کتاب افثانه های جادوگری به نویسندگی آقای محمد شمس ارائه شده از کانال تلگرامی هزار های افثان داستانهای ای سوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی گوینده حمید شاملو با مهرامی سرین دروت ها خدمت شما عزیزان همراه و همسفر در خدمت شما هستیم با قسمت دوم پادشاه رودخانه طلایی چگونگی ملاقات آقای باد شرقی با برادران سیاه و امیدوارم که مثل همیشه همراه و همسفر بنده باقی بمونید تا به انتهای این داستان برادران سیاه پس از دیدن آقای باد جنوب شرقی چه کردند؟ و چگونه کلوک کوچیک با سلطان رودخانه طلایی گفتگو کرد. آقای باد جنوب شرقی راست گفته بود. بعد از این ملاقات اون دیگه به دره طلایی برنگشت. باران تا پایان سال در دره طلایی نبارید. با اینکه همه چیز در پای کوه سبز و زنده و شاد باقی مونده بود. در ریه سه برادر دوچار خوش سالی شده بود حاصل سرین سرزمین کشور تبدیل به توده خاک سرخ شده بود و طوری که برادران بناچار راهی شهر دیگه شدند، اونها تموم ثروتشون را از دست داده بودند. به جز مقداری ظروف تلایی چیزی براشون نمونده بود شوارس گفت بهتره که مثل فروشندگان تلاه وارد شهر بشیم. ما میتونیم تلاه ها رو کنیم و یک فلز اعظان به اون اضافه کنیم تا وزنش زیاد بشه و کسی هم نمیفهمه. با این فکر خونه ای در شهر گرفتند و برای زوب کردن طلا کوره ساختند. اما به دو دلیل در این کار هم موفق نشدن. اول که مردم مایل به خرید تلاهی بد نبودن و دوم که اونها پوله به دست اومده رو صفحه عیاشی میکردن. اونها کلوک رو وادار میکردن که توی خونه بمونه و مواظب کوره باشه. اونها تمام طلای خود رو زوب کردند بدون اینکه که پس داشته باشن. تنها ظرف باقی مونده یه لیوان بود که به کلوک داده شده بود. کلوک این لیوان تلایی رو خیلی دوست داشت و حاضر نبود اون رو از دست بده. این یک لیوان قدیمی بود که در قسمتی از بدنه اون مجسمه‌ای یک صورتی از طلای قرمز داشت و موهای بلند تلایی با دو چشم قرمز ولی خشم گیر این چشما طوری قرار گرفته بود که هر کس از لیوان آب میخورد مجبور بود به اون چشما نگاه کنه یه روز چوارس از این لیوان آب نوشید و گفته بود که در موقع نوشیدن آب متوجه شده که چشم ها باز و بسته شدن. حالا قرار بود این لیوان زوب بشه و کلوک بیچاره از این بابت قصدار بود. اما برادرانش فقط به اون میخندیدند و لیوان رو عدسش گرفتند و داخل زرفه مخصوصی که توی کوره بود انداختند. و کلوک رو برای انجام کارها تنها گذاشتند و از خونه خارج شدند. با حسرت و اندوه به دیوان که اون رو دوست قدیمی خودش میدونه است نگاه میکرد. حالا همه موهای موهایی صورت آب شده بودند و دماغ قرمز شده بود و کشم ها به نظر میرسید که از همیشه بیشتر عصبانی هستند. کلوک با خودش میگفت تجربه نداره که این چشمها این همه عصبانی هستند چون با اونا بدرفتاری شده. کلوک به طرف پنجره رفت تا نفسی تازه کنه. از پنجره کوهها که دور تا دور در رای طلایی ایستاده بودند دیده میشد ما بلندترین نقطه که رودخونه طلایی هم از اونجا جاری بود و خودنمایی میکرد کلوک برای مدتی به رودخونه نگاه کرد و گفت اگه رودخونه واقعا از تلا بود چقدر خوب بود صدای واضح و محکمی به گوش رسید نه نه این درست نیست کلوک. کلوک از جا پرید و فریاد کرد یعنی چی؟ اینجا که کسی نیست به اطراف اتاق نگاه کرد پشت سرش رو دید اما کسی نبود. دوباره کنار پنجره نشست و به فکر فرو رفت که اگه رودخونه واقعا از طلا بود چه خوب میشد. همون صدا بازتر از قبل گفت کلوک پسرم. نه ابدا اینطوری نخواهد شد کلوک دنبال صدا، همه قسمت های اتاق گشت تا اینکه متوجه شد صدا از میون آتیش رو از داخل ظرف شنیده میشه کلوک پسرم کلوک ساکت بود و دوباره شنیده شد کلوک پسرم کلوک گفت باید شجا باشم و ظرف رو برداشت و به داخل اون نگاه کرد اون دماغ قرمز و چشم عصبانی اون صورتی رو که روی لیوان خودش بود رو دید. صدا گفت بیا جلو پسرم من حالا آماده هستم من رو توی ظرف مخصوص تلا بریز. کلوک شگفت زده شده بود و نمیتونست کاری انجام بده. صدا خشبین گفت زود باش کلوک پوری این کار رو انجام بده برای من. و کلوک به سرعت این کار رو انجام داد. سپس یک تن و دو بازو و سر و دست دوست قدیمی اون پیدا شد. و به هم پیوستن. حالا یک مرد کوچک تلایی با قدی حدود و 45 متر اونجا ایستاده بود و به کلوک نگاه میکرد. کلوک احساس میکرد که دیگه از این مرد کوچک نمیترسه و بالاخره پرسید ببخشید شما در لیوان من بودین؟ مرد کوچک تلایی با سرعت به سمت کلوک رفت و مستقیم روباری اون ایستاد و گفت من سلطان محلی هستم که شما به اون روتخونه طلایی میگید. ولی یه جادوگر نیرومند منو به اون شکل درآورد که تو دیدی. اما حالا با کمک تو به شکل اولم برگشتم. تو پسر خوبی هستی و میخوام کمکت کنم. پس خوب گوش کن و حرفام رو به خاطر بسپار. از گویی که روتخونه تلایی از اون جاری میشه بالا برو و قطری از آب مقدس رو در اون بچکن. اگر هر کسی چنین عملی رو انجام بده رودخونه فقط برای اون تبدیل به تلاع میشه اما تو فقط یک بار میتونی این کار رو و این تلاش رو انجام بدی اگر کسی آب ناپاکی رو در رودخونه بریزه تبدیل به سنگ و سیاه خواهد شد و بعد مرد کوچیک قدم زنون وارد آتیش شد و در گرمترین نقطه آتیش ایستاد و ابتدا تمام بدنش قرمز و بعد سفید و و بعد مثل ابری از دود به هوا رفت و حالا بشنویم که چگونه هنس عآزم رودخونه طلایی میشه و دچار ماجراهای جدید به محض اینکه سلطان رودخانه طلایی خارج شد هنس و شوارس به خونه اومدن. اونها وقتی شنیدند که لیوان تلایی گم شده به شدت عصبانی شدند و کلوک بیچاره رو کتک زدند از اون خواستن تا دلیل گمشدن لیوان تلایی رو بهشون توضیح بده. کلوک هر چیزی رو که اتفاق افتاده بود تعریف کرد. البته برادراش حتی یک کلمه از حرفای اون رو باور نمیکردن و مجددن اون رو اونقدر زدن که دستان خودشون خسته شد و بعد رفتند خوابیدن. صبح روز بعد اونها مجددن کلوک رو مجبور کردن که داستان گمشدن لیوان رو براشون تعریف کنه. وقتی که ماجره رو بی کم و فکر کردن که ممکنه این موضوع واقعیت داشته باشه. تصمیم گرفتن که به رودخانوی تلایی برن. اما اینکه کدومشون راهی این سفر بشه بین اونها مشاجره در گرفت پس در انجام کار به کتککاری کشید و چنان سر و صدایی به پا شد که همسایه ها اومدن. و چون نتونستن اونها را از هم جدا کنند، به ناچار معمور خبر کردند. وقتی این معمور ها رسیدن هنس فرار کرد اما دستگیر شد. و قاضی اون رو به پرداخت مبلغ زیادی محکوم کرد. اما چون شوارس پولی نداشت، اون رو به زندان انداخت. هنس، وقتی از ماجرای زندانی شدن شوارس با خبر شد، خیلی خوشحال شد. و به خودش گفت، به این ترتیب من به روتونه تلایی میرم. اما در ابتدا اون دقیقا نمیدونست که آب مقدس رو چگونه باید به دست بیاره. اون به خوبی میدونست که هیچ کس آب مقدس رو به اون نخواهد داد چون همه اون رو میشناختند و میدونستند چه آدم شروریه. سرانجام تصمیم گرفت آب مقدس رو از کلیسا بدزده با این تصمیم آب مقدس رو دزدید و در ای که با خود برده بود ریخت. صبح روز بعد قبل از طلوع آفتاب مقداری آب و غذا برداشت و راهی رودخونه طلایی شد. راه او از مقابل زندانی میگذشت که شوارس در اون مبهوس بود او شوارس رو دید که با قیافه غمگین پشت میله های زندان ایستاده بود هنز فریاد زد صبح بخیر بردر میتونم پیامی رو از تو برای سلطان رودخونه تلایی ببرم شوارس خیلی عصبانی شد اما هنز فقط به اون می خندید. شوارس گفت بالاخره یک روز حساب تو رسم. هنز ظرف آب مقدس رو جلوی صورت شوارت گرفته و خندید و به راه خودش ادامه داد. سپه زیبایی بود. ابرها به آرومی روی درر را رو پوشونده بودند. هنس به هیچ کجا نگاه نمیکرد اون چشمش فقط به رودخونه طلایی بود. اون هیچ فکری نداشت و به سرعت به طرف رودخونه تلایی قدم برمی داشت و نمی دونست که چقدر راه اومده. خیلی خسته شده بود. رفت و رفت تا به تخت سنگ بزرگی رسید. عبور او از اون خیلی خطرناک بود. در بعضی از نقاط ناچر می شد که چهار دست و پا راه بره و بارها، بارهای بار افتاد و نتونست از این محل آب آشیامندنی و غذای خودش رو عبور بده. به اونها رو پشت سر جا گذاشت و بالاخره با سختی به طرف دیگه ای تخت سنگ رسید. و با خستگی خودش رو در میون علفزارها در اون طرف کوه انداخت. نیم ساعتی استراحت کرد و مجدداً آماده حرکت شد. راه اون حالا از میون تخت های قرمز خشک میگذشت. اونجا ابداً علفی نبود و درختی وجود نداشت که جلوی تابش خورشید رو بگیره. درست بعد از ظهر بود. بعد از ظهر روز گرمی بود که بادی نمیوزید هنس خسته بود و بیش از همه چیز احتیاج به آب داشت اما فقط آب مقدس رو به همراه خودش داشت چندین بار به آب داخل کوزه نگاه کرد و با خودش گفت که فقط سه قطره کافیه من میتونم مقداری از این آب رو بنوشم و بقیه رو برای رودخونه طلایی کنال بذارم در کوزه رو برداشت و کوزه رو در دست گرفت و جلوی دهانش گرفت اما در همین لحظه تشمش به سگ کوچیکی افتاد که از تشنگی در حال مرگ بود اما هنس بدون توجه کوزر و بالا برد و مقداری آب خورد و به راه افتاد هنس نفهمید که چرا ناگهان تاریکی آسمون رو پوشوند راه سخت و سختتر و هوا گرم و گرمتر میشد اون بیشتر و بیشتر به آب احتیاج داشت بعد از نیم ساعتی مجددا به کوزه آب مقدس نگاه کرد و ظرف آب که حالا نصفه شده بود گفت اما من سه قطر آب برام کافیه هنوز فاصله زیادی بود اون ایستاد و در و کوزه رو برداشت و کوزه رو به طرف دهانش برد در همین لحظه کودک زیبایی رو دید که کنار اون روی زمین دراز کشیده و از تشنگی در حال مرگه چشمان کوچک بسته شده بود و دهانش خشک و سیاه شده بود. هنس لحظه‌ای به اون نگاه کرد و بعد اتنا مقداری آب آشامید و به راه خودش ادامه داد. ابری روی خورشید رو پوشوند و خطی طولانی سیاه اطراف کوهستان رو فرا گرفت. خورشید غروب کرده بود اما هوا خنک‌تر نشده بود. 500 متر بالاتر چشمه بود که رودخانه های تلایی از اون سرچشمه می گرفتن. پایان سفر نزدیک بود. هنس برای استراحت ایستاد در همین لحظه صدای نالهای به گوشش رسید گشت و پیر مرد سفید موی رو دید که روی تخت سنگها دراز کشیده و در طلب آب دستهاش رو به سوی هنس دراز کرده بود. و می که آب، آب. هنس پاسخ داد. من آبی ندارم که به تو بدم. و تو هم دیگه به اندازه کافی زندگی کردی. او از روی پیرمرد پرید و به خودش ادامه داد. خورشید مانند گلوله‌ای سرخ و آتشین پایین اومده بود و روی تخت سنگ‌های بالای رودخونه ایستاده بود و پایین رو نگاه می‌کرد. رودخونه از نور سرخ رنگ خورشید پر شده بود و نور خونین سر تا سر آب رو پوشونده بود. هنس کوزارو به داخل رودخونه انداخت. به محض اینکه کوزه داخل رودخونه افتاد، عرق سرد روی هنس رو پوشوند، فریادی کشید و افتاد. از فریاد اون آبها گرده هم اومدند و رودخونه ها با صدای شبیه به صدای گربه غمگین به راه خودشون ادامه میدادن. و ما در ادامه بشنویم که شوارت چگونه آزمه روتخانه تلایی شد و به اون چی گذشت. کلو که بیچار تنهای تنها مونده بود و منتظر اومدن هنس بود. وقتی دونست که اون بر نمیگرده خیلی ترسید. به دیدن شوارت رفته و هرچی که اتفاق افتاده بود رو به اون گفت. شوارت خیلی خوشحال شد و گفت هنس باید تبدیل به یک سنگ سیاه شده باشه. دیگه دستش به تلاها نمیرسه. اما کلوک غمگین بود و تمام شب رو گریست. فردای اون روز کلوک نزد یک زرگر رفت و مشغول کار شد. اون روزهای زیادی رو به سختی کار کرد تا اینکه تونست پولی رو پسانداز کنه و با دادن جریمه شوارس اون رو از زندان آزاد کنه. شوارس با خوشحالی به کلوک گفت که بایستی به دنبال روتونه تلایی بره و اون رو تبدیل به طلا بکنه. اما کلوک گفت که بهتره اون نره. و خود شوارس به رو ببینه که بر سر هنس چی اومده. شوارس که شنیده بود هنس مانندی یک دوست و کلیسا وارد شده و از آب مقدس دزدیده، اون فکر میکرد که این عمل باعث شده سلطان رودخانه طلایی خشکین بشه و اون رو به سنگ تبدیل کنه. بنابراین اون مقداری از پول کلوک رو برداشت و به مردی داد و گفت برو کلیسا برام مقداری از آب مقدس بیار. مرد این کار رو کرد و شوارتس صبح روز بعد قبل از طلوع خورشید آب مقدس رو در کوزه ای ریخت و مقداری از آب آشامیدنی برداشت و غذای و راهی کوهستان شد. اون هم به صخره بزرگ رسید و فهمید که عبور از این صخره به آسونی امکان نداره. مجبور شد آب و غذای خودش رو پشت سرش بگذاره پس از تلاش بسیار از صخره بزرگ عبور کرد. هوا خیلی سنگین و گرم بود بعد از سود از سخت سنگ اون احتیاج زیادی به آب پیدا کرد فکر کرد مقداری از آب مقدس رو بخوره و به محض این که خواست رو بکنه به سربچه زیبایی را دید که کنار اون روی صحراها دراز کشیده و ناله میکنه و درخواست آب داره شواز گفت این آب برای نصف شکم من هم کمه و آب رو نوشید و گذر کرد او نیم ساعت دیگه به راه خودش ادامه داد. اما باز هم احساس خستگی و تشنگی زیادی میکرد. مجدداً اندکی از آب کوزر اومد که بنوشه پیرمردی مردی رو جلوی خودش دید. پیرمردی روی زمین دراز کشیده بود و در حال مرگ بود. و از او با التماس آب میخواست. شوارت گفت این آب خیلی کمه. حتی نمیتونه من رو سیراب کنه. پس، آب رو نوشید و عبور کرد به نظر می رسید که هوا خیلی تاریک شده بود اون به بالا نگاه کرد ابری سیاه رنگ به رنگ خون خورشید رو پوشونده بود شوارس برای خودش ادامه داد و دوباره تشنش شد خواست آبی بنوشه نوشه که برادرش هنس رو دید چون به اون نگاه کرد به نظرش رسید که برادرش با التماسهاش دستش رو بالا گرفته و از اون تقاضای آب می کنه شوارس خندید و گفت تو اینجا هستی؟ یادت میاد؟ وقتی که من در زندان بودم چطور به من خندیدی؟ آب؟ آره، فکر کردی که من این همه راه اومدم که به تو آب بدن سپس از روی هنس پرید و در همین لحظه به نظرش رسید که هنس داره به اون میخنده ترس در تمام وجودش نشست اما چون در پی تلا بود سعی کرد که بر ترس خودش غلبه کنه اپهای قرمزنگ آسمان رو پوشونده بودن و بادی شدید اونها را به داخل تاریکی ها میروند. شوارت سرانجام کنار روتخانه طلایی رسید و کوزه آبی را که داشت درون روتونه انداخت و به محض اینکه این کار را انجام داد عرقی سرد بر تنش نشست و به زمین که زیر پایش بود خالی شد و افتاد. روتونه با صدایی شبیه به صدایی گربه غمگین از اونجا عبور میکرد. اما چگونه برداره کچیکتر آزم سفر شد و چه اتفاقی برای اون افتاد؟ ماجرای دیگه ایه کلود که فهمید دیگه شوارس بر خیلی غمگی شد یک دو ماهی کار کرد تا خسته شد بعد فکر کرد که بهتره اون هم به روتخانهی تلایی بره چهره سلطان روتونه به نظرش مهربون اومده بود و فکر میکرد که ممکن نیست سلطان رونی طلایی اون رو تبدیل به سنگ بکنه به کلیسا رفت و به محض درخواست مقداری از آب مقدس رو به اون دادند سپس نان آبی برداشت و آب مقدس رو در خوزه ای ریخت و صبح زود عازم کوهستان شد وقتی که به صخره بلند رسید فهمید که صعود از این صخره برای اون کار بسیار مشکلیه چون اون لاغر و ضعیف بود و قدرت برادرانش را نداشت و تا اون وقت هم از چنین کوه بلندی سعود نکرده بود بارها زمین خورد سرانجام آب و نان خودش رو از دست داد و بعد از سعود مدتی روی علفهای سبز استراحت کرد سپس از تپهی بالا رفت گرمترین وقت روز بود و بعد از نیم ساعت تشنش شد او خواست که کمی از آب مقدس بنوشه اما در همین لحظه چشمش به پیرمرد افتاد که کنار تپه بالای سر اون بود و به شدت ناله میکرد. پیرمرد گفت: پسر جان، کمی آب به من میدی؟ کلوک خوب به اون نگاه کرد. خیلی خسته و بیمار به نظر میرسید. کلوک کوزه رو به اون داد. پیرمرد مقدار زیادی آب نوشید و وقتی کوزه رو به کلوک داد، کوزه نصف شده بود. کلوک دوباره به راه افتاد احساس میکرد راف رفتن براش آسونتر شده. حتی از چند جا که علف سبز و تازه رویده بود آواز پرندگان رو شنید. کولوک فکر میکرد که هرکس چنین آواز شادمانهی رو نشنیده. کمی که رفت دوباره احساس تشنگی کرد. خواست چند جوره آب بنوشه که چشمش به پسر پسربچه کوچیکی افتاد که کنار جاده نشسته بود و از شدت تشنگی اشک میریخت. کلوک گفت من میتونم باز هم تحمل کنم. بنابراین کوزه رو جلوی پسر بچه گرفت و اون هم آب نوشید و سپس خندید و دوید و پشت تپه از نظر گم شد. کلوک به سعود خودش ادامه داد و گل‌های خوشبو رو دید که روی سخراها رشد کردند. نور خوشید گرم و روشن بود کلوک احساس می‌کرد تا کنون در زندگی انقدر شاد نبوده که الان شده. کمی رفت و باز احساس تشنگی کرد به کوزه نگاه کرد پنج یا شش قطره آب بیشتر در کوزه نمونده بود و اون اگر آب رو می نوشید چیزی برای ریختن به درون رودخانه باقی نمی موند کوزهش رو کنار گذاشت در همین لحظه چشمش به سگ کچی که نیمه جونی افتاد که روی تخت سنگ دراز کشیده بود و کلوک به سگ و سپس به بالای سرش نگاه کرد و با رودخانه تلایی زیادی نداشت اون به یاد حرفهای سلطان رودخونه افتاده بود که تو فقط یک بار میتونی سعی کنی کلوک خواست برای خودش ادامه بده اما زوزهی سگ رو شنید کلوک ایستاد و گفت حیوان کوچیک بیماره اگر من به اون کمک نکنم خواهد مرد سپس نزدیک شد دیگه نتونست تحمل کنه محتوای کوزه رو در دهان سگ ریخت و سگجانی گرفت و روی پای خودش ایستاد گوشاش دراز و طلایی و دماغش قرمز شد و حالا در برابر کلوک دوست قدیمیش سلطان رودخانه طلایی ایستاده بود سلطان گفت پسرم متشکرم نترس همه چیز به خوبی پیش میره اما تو چرا برادرها تو به دنبال این کار فرستادی که من مجبور بشم اونها رو تبدیل به سنگ سیاه بکنم؟ کلوق گفت سلطان شما نباید این کار رو میکردید؟ سلطان گفت آخه اونها آبهای غیر مقدسی رو در اون رو تونه من رکن. تو فکر میکنی که من باید به مردم اجازه این کار رو بدم و مردم رو تشویق به این کار بکنم؟ کلوک گفت من مطمئن هستم که اونها آب مقدس رو از کلیسا آورده بودن سلطان پاسخ داد اما وقتی این آب به کسانی که به اون احتیاج داشتند و در حال مرگ بودن داده نشه دیگه آب مقدس نیست حتی اگر از کلیسا آورده باشن در همین حال سلطان گلی رو که زیر پاش رشت کرده بود چید و روی گل سه قطره آب بارون بود سلطان این سه قطر آب رو درون در اون کوزه کلوک ریخت و گفت حالا این آب رو درون رودخونه بریز. به اون طرف دره طلایی برو. سپس سلطان ابری شد و به آسمان رفت و دور شد. کلوک به رودخونه رسید. قطره آب کوزه رو در رودخونه ریخت. آب رودخونه در جایی که این قطره ها ریخته شده بودند پایین رفت. کلوک مدتی به تماشا ایستاد اما از اینکه رودخانه تبدیل به طلا نشده بود غمگین شد و پایین رفت. تا به اون طرف دره طلایی بره وقتی به دره طلایی رسید رودخونه ای را رو دید که شبیه رودخونه طلایی از چند چشمه کوچیک و بزرگ از زمین خارج میشه و سرچشمه میگیره و ناگهان همه جا سبز شد و خوش که با برد جنسی برادرش به وجود اومده بود با عشق و محبت اون از بین رفت کلوک از اون به بعد زندگی تازه‌ای رو در دره شروع کرد آب رودخونه رو که برای اون حکم طلا بود به زودی کلوش رو مرد ثروتمندی کرد اما اون هرگز فقرار رو در خانش نمیراند و با همه اونها مهربون بود امروز مردم محلی رو که سه قطر آب مقدس در رودخونه ریخته شده به هم نشون میدند و بلندترین قسمت رودخونه هنوز همون دو سنگ سیاه دیده میشه که آب در این قسمت ها با غمع و اندوه از اطراف این دو سنگ میگذره و مردم هنوز هم این سنگ ها رو برادران سیاه مینامند بله دوستان عزیز و همراه و همسفر بنده این هم قسمت دوم و قسمت پایانی رودخانه تلائی و برادران سیاه سپاسگزارم که در این داستان هم همراه و همسفر بنده بودید و به زودی قول میدم که با داستانی دیگه از افسانه‌های های جادوگری در خدمت شما باشن خدا ها رو کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افثانه ای صوتی. نشانی کانال تلگرامی تی نقطه .me می سلاش مهران دوستی تی نشانی وبلاگ ما ام s t i b l o g f کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی